نعمتی ربی که بی مجنون. به نام الله که بخش و با رحمت, است. با رحمت است با رحمت است نون قسم به قلم و قسم به آنچه که می نویسند که تو ای پیامبر به برکت نعمت پروردگارت دیوانه نیستی و برای تو پاداشی پایدار است زیرا تو اخلاقی بزرگوارانه وارانه داری به زودی تو میبینی و آنها نیز میبینند که کدام یک از شما دیوانه هستید پروردگارت بهتر از هر کس دیگر میداند که چه کسی از راهش گمراه شده و چه کسی هدایت یافته است پس از تکذیب کنندگان حقایق اطاعت مکن دوست دارند تا نسبت به آنها نرمش نشان دهی تا آنها نیز نسبت به تو نرمش نشان دهند از هیچ فرومایهای که بسیار قسم میخورد اطاعت مکن همان که بسیار عیبجو و سخنچین است همان مانع خیر آن متجاوز گنهکار آن کینتوز توز خشن و بدنام هرچند که صاحب مال و فرزند باشد همانکه چون آیات ما بر تلاوت می شود گوید افسانه پیشینیان است به زودی بر دماغش داغ ننگ گذاریم ما آنها را امتحان کردیم همان گونه که صاحبان آن باغ را امتحان کردیم آن هنگام که قسم خوردند صوبگامی و ها را خواهند چید بدون این که انشاءالله بگویند فس بلایی بزرگ باغشان را آیاته کرد در حالی که در خواب بودند و آن باغ سرسبز چون شب تیره شد صوبگاهان هم دیگر را صدا زدند اگر میخواهید محصولات را بچینید به سوی مزاره خود حرکت کنید آنها ره شدند در حالی که آغسته با هم سخن میگفتند. مراقب باشید امروز حتی یک فقیر به سراغتان نیاید آنها صوبگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند. هنگامی که باغ را دیدند گفتند: گویا راه را اشتباه آمدی." "نه، ما از همه چیز محروم شده‌ایم." عاقل‌ترینشان گفت: "آیا به شما نگفتم چرا خدا را تسبیح و ستایش نمی‌کنید؟" گفتند: منزه است پروردگار ما" بیشک ما زندگی ظالمانه‌ای داشتیم سپس آنها رو به هم کردند و به ملامت یک دیگر پرداختند گفتند وای بر ما که بوده ایم. امیدواریم پروردگارمان بهتر از آن را به ما عطا کند زیرا اکنون به او دلبسته ایم این چنین است مجازات الهی و مجازات آخرت بزرگتر خواهد بود اگر درک کنند اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جنات الْمُسْلِمِينَ حرمت حریم الهی نزد پروردگارشان بهشتهای پرنعمتی دارند آیا تسلیم شدگان به حق را همامند مجرمان میدانید شما را چه شده است؟ چگونه حق می کنید؟ آیا کتابی دارید که از آن درس میگیرید گیرید؟ و هرچه به قاید یافت می شود؟ شاید هم عهد و پیمان محکمی تا روز قیامت با ما دارید و هرچه را اختیار می کنید، حق شماست از آنها بپرس، اگر این چنین است کدامشان زامن آنند؟ شاید هم معبودانی دارند اگر چنین است بگو معبودانشان را بیاورند اگر راست میگویند آن روزی که از وحشت ساقپایشان برهنه گردد از آنها دعوت میشود تا سجود کنند اما قادر به آن نخواهند بود چشمانشان به زیر افتاده و ذلت و خاری سراپای وجودشان را فرا گرفته است پیش از این نیز آنها را در حالی که سالم و تندرست بودند به سجود فرا خوانده بودند اکنون مرا با آنها که این سخن را تقسیب می کنند واگذار ما آنها را از جایی که نمی فهمند تدریجن به سوی عذاب می برید. اکنون با آنها مهلت می زیرا تدبیر من متین و حساب شده است آیا از آنها به خاطر رسالتت مزدی ای که پرداختش برای آنها سنگین است یا اینکه علم غیب دارند و می نویسند در برابر حکم پروردگارت صبر داشته باش و مثل صاحب ماهی یونس مباش که با دلی پرندو خدا را خواند. اگر برکت نعمت پروردگارش نبود بطعاً نکوه شده از شکم ماهی به سهرای بی آب و علفی افکنده میشد. اما سرانجام پروردگارش او را انتخاب کرد و در زهره سالحان قرارش داد اهل کفر هنگامی که قرآن را شنیدند نزدیک بود با چشم و نیت پریدشان تو را از قرآن منحرف کرده و به ورطه هلاکت اندازند و ادعا کنند که او دیوانه است اولنگ قران فقط پند و تذکری برای جهانیان است و يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون ان له لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين راست آه... گفت خداوند بلند مرتبه بود از این از مؤسسه قرآنی پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم